در متحرک باز شد و بب و تاننبام خانم خانه از اتاق غذاخوری پا به آشپزخانه گذاشت. زنی کوچک اندام تقریبا بدون باسن و بیست و پنج ساله بود. موهای بی حالت، ساده و بی را پشت گوشهای خیلی بزرگش انداخته بود. شلوار جینش تا زانو می رسید. بلوز مشکی بی آستین و یقه برگردان پوشیده بود. جورا به کوتاه و کفش و چرمی پهنی به پا با آنکه اسمش آدم را به خنده می و با آنکه ظاهرش بیملاحت بود، چهره کوچک، گیرا و به یادماندنیش او را زنی جذاب و بینظیر نشان میداد. یک راست به طرف یخچال رفت و بازش کرد. توی یخچال را نگاه می کرد. پاهایش را جدا از هم گذاشته بود. دستهایش روی زانوهایش بود و از میان دندانها بی آنکه آهنگ مشخصی را بزند سوت میزد و هم آهنگ با آن پایین اش را با لوندی به چپ و راست ترکت می داد. ساندرا و خانم اسنل ساکت بودند. خانم اسنل بیان که عجله در رفتارش باشد، سیگارش را خاموش کرد. ساندرا ساندرا از کنار کلاه خانم اسنل چارچشمی نگاه کرد و گفت: بله خانم. دیگه چیزی از خیارشورا نمونده؟ میخوام یه دونه خیارشور براش ببرم. ساندرا با زیرکی جواب داد: همه رو خورد. دیشب پیش از خوابیدن قالشونو کند. دو دونه بیشتر نمونده بود. خب، پس وقتی میرم ایستگاه قطار یه مقدار میخرم. گفتم شاید بشه گولش به شغلش بزنم از قایق بیارمش بیرون. بابا در یخچال را بست و رفت تا از پنجره روبه دریاچه بیرون را نگاه کند. از کنار پنجره پرسید: چیز ای هم میخوایم؟ فقط نون چه که رو رومیزه سرسرا گذاشتم خانم اسنل. ازتون ممنونم. خانم اسنل گفت دستتون درد نکنه. راستی شنیدم لاینل روزها فرار میکنه و بعد خنده کوتاهی کرد. بابا گفت آره همینطوره و دستهایش را آهسته توی جیبهای پشت شلوارش فرو کرد. خانم اسنل خنده کوتاه دیگری کرد و گفت جای شکرش باقیه که خیلی دور نمیره. بابا پشت پنجره جایش را کمی تغییر داد تا پشتش درست به دو زنی نباشد که پشت میز نشسته بودند گفت آره و موهایش را پشت گوشهایش برد و برای آنکه خانم اسنل را در جریان گذاشته باشد افسود از وقتی دو سالش بود همش یه راهی رو را میگرفت و میرفت اما هیچ وقت خدا جای دوری نرفته گمون میکنم کنم دورترین راهی که رفته توی شهر رو میگم مال باشه توی پارک که دو ردیف ساختمون با خونمون فاصله داره و نزدیکترین جایی که رفته جلوی در ساختمون بوده همونجا پا به پا مالیده تا با پدرش خداحافظی کنه هر دو زن پشت میز خندیدند ساندرا خیلی دوستانه به خانم اسنل گفت مال جایی که نیویورکی ها برای سرسر بازی رو یخ میرن بچه ها رو میگم خانم اسنل گفت اهه بابو یک پاکت سیگار و یک جعبه کبرید از جیب شلوار جینش بیرون آورد و گفت سه سالش بیشتر نبود. همین پارسال بود. سیگاری روشن کرد و همانطور که دو زن با سرزندگی نگاهش میکردن گفت تماشایی بود. همه پلیس ها رو خبر کرده بودیم دنبالش میگشتن. خانم اسنل گفت: پیداش کردن؟ ساندرا با تحقیر گفت البته که پیداش کردن؟ عجب حرفی میزنی؟ ساعت یازده ها رو به شب پیداش کردن. وسط خدایا، ماه فوریه بود انگار. هیچ بچه ای توی پارک نبود. البته بجز آشق و محشوق و یه مشت آدمای بی سر و پا. روی کف جایگاه ارکست گرفته بود نشسته بود و تیلی رو این سر و انسر شکاف قیل میداد. از سرما ما کبود شده بود. حالشم؟ خانم اسنل گفت، پنابر خدا، برای چی این کارو کرد؟ یعنی میگن برای چی از خونه میذاشت میرفت؟ بابا حلقه ناقصی دود را به طرف جام پنجره فرستاد و گفت: بعد از ظهر اون روز چند تا از بچهای پارک میان پیش اونو بی اون که از چیزی خبر داشته باشن بهش میگن بچه بوگندو دست کم این چیزیه که فکر میکنیم علت فرارش بوده. درست که نمیدونم خانم اسنل. این چیزیه که من دستگیرم شده. خانم اسنل پرسید: از کی تا حالا این کارا رو میکنه یعنی میگم از کی تا حالا این کارا رو میکنه. بابو گفت: «راستش از وقتی دو سال و نیمش بود میرفت زیر میز رخشویی زمین خونهمون قایم میشد. تو اتاق رخشویی. سر اینکه نااممی نمیدونم چیچی چی که دوست جونجونیش بود در اومده بود بهش گفته بود یه کرم توی فلاسکش قایم کرده. دستکم این چیزی بود که از حرفاش دستگیرمون شد. بابا آه کشید و از کنار پنجره که دور میشد، خاکستر درازی بر سر سیگارش به چشم می‌خورد. به طرف در توریدار رفت و به جای خداحافظی خطاب به دو زن گفت، یه زور دیگه هم میزنم. آنها خندیدند. ساندرا که هنوز می خندید به خانم اسنل گفت، میلدرد، اگه نجنبی به اتوبوس نمیرسی. بابا در توریدار را پشت سرش بست،